با حالا بخونی بکنی که سلام سلام علیک بگیداری علی. از همی سلام یه ذره بلندتر هم بخون که دوستان بشنوان منم همجود من پیرم و روشم سنگینه دفتر بران از اشبر می که چصپونده به هم بران ام اشبر که مادر اگر بایه سیاهوش کنند شاکر فرن... ببین مالش بایشت سیاهوش درسته؟ درست چون یه وقت شاور دروی گیدی دارد به درکان کسی ای تاسد و این گرده از جنگ او شاید خوشبخت سر سراسر زمین به پهلوی یابوش بچرخو بکیم. بدان که یاد راید که ایران شرایط کشور از جهان اگر که باری 4 دقیقه. آ. تو اگه خوابوست. <Panavid> <Ses> <Ses> <تص> نه <جائع> <s> بخشی کین بلاها. مگر کین بلاها کین یعنی که این مگر مگر کین بلاها من این رو آتش پجمرد. پجمرد. از پجمردن دیگه بله چشم زمانه به نفاه هم زمانه جزان خوب نبشت چونان که یادتون بکنیم بسیار که دیر اگر یادتون باشه و بعد موبادان خواست رو گفت خوابو تعبیر کنیم اینا هم ترسیدن خیلی گفتن اول قول بدیم که حالایی به سر ما نمیارین چیز نمیتونین شام قول بعد حالا داریم میگه که کنجا خوندیم چون این گفت که از خواب شاه جهان کنم آشکارا بر او بر نهان یعنی نهان را بر او آشکار میکنم نه اینکه آشکار را بر او پنهان میکنم یه ذره پیچ داره جمله کنم آشکارا برو بر نهان را یعنی نهان را بر او آشکار میکنن یه خود توجه نکنین جمله یه, یه ذره چی؟ میگه حالا میگه که خواب شما اینطور, اینطور دلالت میکنه به بیداری اکنون سپاهی گران از ایران بیاید دلالت میکنه یکی شاهزاده به پیشندران جهان دیده با او بسی رهنمون یعنی شاهزاده با اینکه که فرموده و جوونه ولی بسیاری مشاوران جهان دیده و با تجربه داره اولیش رستن جهان دیده با او بسی رهنمون یعنی راهنما بران تا حاله اش برگسی کرد چا که این بوم گردت به ما برق سباه تاله حاله می‌دونی تو و اقباله و حالا این خیلی تفصیل داره که من سر این کلاس نمی‌تونه اصلا بگم می‌آمدن و از گردش ستارگان که چون اشتباه هم می‌کردن در محاسبش هیچ وقت یه جور در نمی‌امده هر وقتی که یه چیزی اتفاق میافتاد میدیدن که ستاره ها هر کدوم در کجا قرار گرفتن و بعد یه حد که این،, این طور نشون میده. میگه اون ساعتی که شاه یعنی کابوس او رو گسی کرد به این طرف یعنی فرستاد گسیل کردن گسی مخفف گسیله گفتن بعد. میگه او رو بر اون تال فرستاد وقتی که شاه او رو فرستاد ستاره ها طوری بودن که نشون میداد که این بوم یعنی این سرزمین به ما تباه میشه یکی از معنی های بوم جغده بوم و بوف هر دوش به معنی جغده کوفک هم هم کوف هم جغده کوف بوف بوم یه معنی بوم هم سرزمینه که در ترین نوشته های پارس باستان که به خط میخی نوشته میشه هست اون فرمول نیایش اوورام ازدارو که یه جاملش رو نوشته بودن براتون قبلا بگه وزرک اوورام ازدار هیا ایمام بوم ادا خدای بزرگ از اوورام ازدار هیا یعنی که ایمام یعنی این بومیم یعنی بوم را ادا یعنی آخری یعنی این سرزمین پس بوم سرزمینه مرزم به منی سرزمینه مرز عنی سرحد نیست اینو تازه درست کردن این مرز عنی سرحدو چه ساله درست کردن قبل از رو مرزم که میگفتن مرز ایران یعنی سرزمین میگن میگه تاله فرستادن سیاهوش طوری بوده که این سرزمین رو به ما تباه میکنه و از بینیدن اگر با سیاه کند چاخ جنگ چو دیبه شود روی گیتی به رنگ دیبه همون دیبه هست دیبه چیه گفتید پارچه ابریشمی کلوف پارچه ابریشمی کلوف که معمولاً برای بوم نقاشی همین یعنی الانم هم به کار میبرن روش تابلو میشه و قدیم برای لباس اینا که اینا درست میکردن نقش روش میکشتن اینه که رنگارنگ بوده طبعا میگه زمین مثل دیبا میشه از رنگ‌های مختلف یعنی،, یعنی خون ریزی میشه یعنی خون ریزی زیاد میشه چه شو دیبه شو از روی گیتی به رنگ ترکان نماند کسی پارسا اینجا هم با شعر یه پیچ داره یعنی از ترکان پارسا کسی باقی نمیمونه نه اینکه هیچ از ترکان پارسا نمیمونه، نه از ترکان پارسا کسی باقی نمیمونه پارسای همون با... بله کمی گردد از جنگ او پادشاه برای پادشاه هم نتیجه جز قمانده او نداره این جنگ با سیاوش اگر او شود کشته بست بر دست شاه که اتفاقا سرنوشت همین هم بوده و همین اتفاق هم میفته ولی اول اینا میگن و اگر او به دست پادشاه کشته بشه به توران نم آمد سر و تخت و گاه نه دیگه سر میمونه به تنه نه تخت و تاج و تخت و گاهی باقی یعنی تمام خاک توران رو آشوب میگید. و همینطور هم شد رستم رفت به کین سیاهش تمام سراسر توران رو به روایت شاهنامه زد و سوزند و خراب کرد و مردم پشت و گناهکار و بی گناه و حتی یه پسر افراسیاب که هرچی گوه آه من سیاهش دوست داشتم با من رفیق بود من خیلی ناراحت شدم از کشت گوه انتقام اونم اونم هیچ گناهی نداشت که کشتانش کشت و البته این حالا اگر که بگین این انتقامجون اینا خیلی بده من با شما موافقم این بده ولی در دورانهای خیلی قدیم این کینکشی اصلا نشونه بیفرهنگیه و مال دوره است که همین رهی تو سرزادنه واسه مرده شما نمیدونید چه میکردن یه جاهایی گاهی هست اصبار و یالدامشونو میبرید زنا موهاشونو قط میبرید استر. تمام اساسیه آدم مرده رو میزدن میشکستن خوننش رو آتیش میزدن به نشان مصیبت کسی بگید بعد هم پاکستر رو سرشون و همه مردم از دور از نزدیک بالا پایین بس بستا که مثلا یارو که مرده خیلی هم پسره خوشحاله برای اینکه بوله و اینا میرسه به اون ولی از دور که میدید دارن یه دنگان میزد تو سرشو سر فریاد و داد و بر جلو و بر اینا نشون بی فرهنگیه برای اینکه آدم خب بله یه عزیزش بمیره خب ناراحت میشه این هیچ حرف نداره چه پدرش باشه، چه پسرش باشه، چه قمریش باشه بلاخره این دردناک آدم ناراحت میشه، هیچ شکی شک نیست اما این کارای دشت کردن و گاهی اصلا به خلاف حقیقتا درش نمی سوزه یا گریهاشو کرده ولی باز این دیمزگیه رو بکنه اینا کارای یا همینطور مثلا فرض کن که الان میبینید در کار سیاست امروز دو تا کشور با هم دشمن زدن هزاران نفر کشتن فردا این رئیس این به اون که برادر من نمیدم فلا این برای این است که اون کینه را اگه بخوام به هزاران سال همجوره اعدام پیدا کنه کما این بعد این بدبختی بیشتر از توی عراق نسبت ایرون هست که سه هزار سال این گرفتاری که شما یه گوشش دیدین هست یعنی اینا به هیچ نفی هنوز قادسیه رو یاد چه صدام از حل حلیم تودی گفتد و هنوز نکرده ایران یه یک بنا ساختود بنا یاد بود قادسیه خب این اه اه نشون داهاتیگریه نشونه پایین بیدن سطح فرهنگیه و در اون روزگار هم طول بودید رستم رفت تمام توران زد و کند و سوزند و فرار کرد که بعدهای گرفتن کشتنش هفت سال اونجا پادشاهی کرد تمام کس و کار هر که به دستش کسید همه رو کشد بعد و بعدم آمد به ایران رفت تو از تو حرم شاه سهرد نداره بره تو حرم ولی کسی خودرت نداره شهرد بزنید. رفت تو حرم تو دابر کشید بیرون جلو شاه بایدتران کشدشد به هر حال اینا همه رو اینجا الان پیش بینی میکنه دیگه نمیگه که تو جنگ کشته بشه یا تو سر میگه اگر سیاوش به دست شاه کشته بشه میبینی اگر او شود پشت دست شاه به توران نماند سر و تخت و گاه سراسر پر گردد شدن به سیاوش به جنگ و بکی. روشن ویدانگاه یادا راستی که ویران شود کشور از کاستی میگه اون وقت کازه یادیت میاد که این حرفایی که ما زدیم درستی راست هم میگه افراسی وقتی فرمان به قتل سیاه هش دادینه این حرفا یادش رفت اگه نه که گاه یاد بدان گاهیاد راستی که بیران شود کشور از کاستی میگه وقتی که کشور از کاستی و کمی خراب شد اون وقت از این مطلب یادیت میاد و جهاندار اگر مرغ گرد داد به پر برای این چرخ گردان نیابد بذاریم مرغ به معنی مطلق پرندست اینو بارها من اینجا گفتم این, این, این چیزی که ما امروز باشیم مرغ این اسمش ماکیانه یا مرغ خانگی بایلالا از گنجش گرفته تا اقاب همشون مرغ هم سعدین گه دوش مرغی به صبح مینادیم عقل و سبتم بورد و طاقت این پرنده میگه اگر پادشاه، اگر افراسی ها، بشه از سرنوشتی که دنیا برایش چیز کرده نمیتونه بگذارد بالاخره بلا بزرش که آمد جهاندار اگر مرغ گردد به پر بر این چرخ گردان نیابد گذر اینجا بر این چرخ گردان گذر نمیابه یعنی از سرنوشتی که چرخ براش تعیین کرده نمیتونی در بری از اینسان گذر کرد خواهد سپر گهی پرز خشم و گهی پرزمش گردش نوزگار اینطوریه گاهی خشم گاهی هم نه حالا اینجا یکی از گره های مهم داستان همینجاست که کابوست پیش بینی کرده به سیاهش تو نامه نوشته که تو نمیخواد از چ؟ افراسیاب خودش به جنگ تو میاد جاتون هست. ولی به دلیلی که که اون دلیل بر کیک کابوس پوشیده است دلیل دیدن این خواب افراسیاب روشش رو عوض میکن. و میخواد این بلایی که پیش بینی میکنن که به سرش خواهد آمد میخواد اینو بیایه ترتیبی بگذر اون هست درش این هست که میاد راستی حقیقتاً میاد به طرف سل وقتی که سیاوش این مطلب می نیبسه پدر پدر فکر داره که این داره اینا رو میزه می زن و تو خر بودی اون پیرمردم مردم بود رستم فکر هم خودش خودشو کار نکردن خودش بود گول و افراسی ها اومدین با شرطاشو قبول کردین و با اتفاق ولی الان کمی شد چو بشنید افراسی ها روشنه نکرد ایچ ایچ و هیچ یکی هی حوض به الف بدل میشه ایچ و هیچ هسته و هسته استخان همون است در زبان های فرنگی هم است او استخان و, و هسته چیز رو هم هسته میوهارم استخان میگه نظامی میگه که نگوگم بر نشانه تیر میشد روتب بی استخان در شیر میشد یعنی خورمای بیرد یا سعدی میگه که گلاورت سعدی سوی بوستان به شوخی و فلفل به هندوستان چه به شیرینی اندوده پوست چون بازش کنی استوخان گرد استوخان همون هست است. هسته است و هسته همیان و امیان هیچ و هیچ یکی فمی شد چوبش نید افراسیاب نکردی ایچ فر جنگ جستن شتا به گرسیوز آن رازها برگشاد این گرسیوز برادر خیلی محرمشه خیلی هم دوستش داره با اینکه او خیلی تق و ازش ولی باز بداش کرد و قصه ها رو بهش گفت نفته سخن ها بس کرد یا پروشن که گر من به جنگ سیاه باش سپاه برانم نیاید کسی کی نخواه نرانم ببشت میگه اگر من به جنگ سیاه باش سپاهی نرانم جنگی نمیشه کسی کی نخواه نمیشه برای اینکه الان هم نشونده دو که سیاه هاش مواجه در مرز نمیخواد گذرم میگه پس اون که نمیاد اگر من نرم جنگی اتفاق نمیافته که گر من به جنگ سیاه و نرانم نه کسی تین خواه نه اون کشته آید به جنگ و نه من براسا ید از گفتگو انجامه مردم هم از گفتگو و سرستا و جنگ و گرفتاری حاصوده میشن نه کابوس خواهد به من نیزکین میگه که کابوس هم از من کینهی نخواهد خواهد تقییمش این است که من کاری دیگه نکردم نه, نه کابوس خواهد به من نیزکین نه آشوب گیرت سراسر زنی میگه هیچ کدوم این اتباهات نمیاته به جای جهان جستن و کارزار مبادم با آدم از آشتی هیچ خواهد جهان جستن به معنی جهانگیریه در جهانجو یعنی جهانگیر به جای گرفتن سرزمین های دیگه به جای جهانجستن و کارزار من جز از آشتی هیچ کار میگه که بنابراین به این دلایلی که گفتم امیدوارم که منم هیچ کاری جز آشتی نداشته باشم فرستم به نزدیک او سی مزرد یه حدیهارش میفرستم؟ پول میفرستم؟ همون تاج و تخت و فراغان گوهر میفرستم براش؟ منوچر گیتی ببخشید راست. منوچر پاچا قدیم. کی میتونه به یکی بود؟ منوچر کی بود؟ نبه زم... دم... پیرهش مگه نوی فریدون نوی دختری ایراج ایراج پسری نداشت فریدون میدونید که قصه فریدون سه پسر داشت ایراج و سلم و تور و مملکت چه قسمت کرد توران رو داد به تور ایران رو داد به ایرج و روم رو داد به سلم اون دو برادر حسد بردن و اومدن با این چه ایرج گفته بود که من هیچ کاری ندارم شما میخواد من تختاج ایرانم میذارم در اختیار شما من اصلا میرم یه ولی چون ایرج کاریزما داشت جاذبه داشت هر کی دید دوستش داشت علاقمند میشد بهش اینا با هم گفتن که تا ایرج زنده است کار ما درست میشه و خلاص نمیشه این است که در این حال که این برای صلح و آشتی و روگوستی و اینا آمده بود بدون سفا کشه اینا کشتن کشن و سرشون بریدن ترسدن برای پدرش فریدون فریدون هم پیر شده و بعد خبر دادن که یه زنی در شبستان ایراج آبستنی حالا یادم نیست که کنیز بود یا زن حال یکی یکی از زنان با وسته به ایراج آبستان سبر کردم دختری زایی. اون دختر رو دادن به شخصی به نام پشنگ در یادتون باشه که پدر افراسیاب هم اسمش پشنگه ولی این پشنگ اون پشنگ نیست این توجه دختر رو دادن به دختر ایرج دادن فشنگ دختر پسر آورد به نام منوچه که کاملا شکل ایرج بود و فریدون او رو تربیت کرد و تعلیم داد برای اینکه به جای اون بنشینه و من اون چشکنشت به جایی پدر اولین این کار کرد رفت دنبال سلمتور و اونا رو کشت و بعد ممرکت رو درست تقسیم کرد که اینجا می گره اولین خونی که ریخته شد که موجه به احتلاق ایران توران شد خون ایراج بود که همه جنگ ها در چه کار او بود اون خون تازه داشت یواش یواش پراموش می شد خون سیاه بشته. اینجا افراسی میگه که منوچه گیتی ببخشید را بخشیدن یعنی تفسیل کردن بخش یعنی قسمت دیگه درسته؟ بخش یعنی قسمت بخشیدن یعنی قسمت کردن یه معنی دیگه معنی که رای جیز ولی تا شما بوده میگه که و این کتاب را بر هفت در بخشیدید یعنی هفته فصلش کردیم ده هفت فصل قسمت کردیم ده هفت باب چون بابم یعنی در بگید یعنی بخش بخش کردیم همون دیگه فخش، فخش کرد. فخش کرد. بخش بخش کردیم بخشیدم بخش کردیم منوچر گیتی ببخشید را میگه منوچر دنیا درست تقصیل کردیم این سرمی کردیمه عربی یا فارسی، هست؟ مثلا هم صورت به نخیر ها دیدیم؟ اون خیر نه او در خیر هیچ ربطیه سرم در فاسی زده سر بعد اینکه در زبانهای باستانی لام نیست نه خیلی صبتی اونه من اونچه افگیتی ببخش این درست یعنی درست دنیا رو تقسیم کرد هم از بهره خیشتم کم نخواست بخش هم به اندازه گذاشت بنابراین اگر ما راضی بشیم به اون ترتیب و به همون تقسیمی که اون که رضا بدیم دیگه جنگی نخواهد بود برای نیز کوتاه کنم دست میگه منم دستم رو کوتاه میکنم از اون چه مال من نیست. زمینی که بخشیده بودن پیش میگه زمینی که قبلا تقسیم کردن و ترتیب دادن من از به اون تقسیم راضی میشم و از اون چه سهم خودم نیست. دستم رو کوتاه میکنم یعنی از اون سخت نظر میکنم سراغ رو نمیرم که این بلاحاز من بل سره. مگر اینجا باز قید تردیده یعنی شاید درسته قید استثنا نیست اینجا میگه من دستم کده ها میکنم شاید این بلاها از من بگذاره از آب این دو آتش برو پجمورد میگه و از آب تدبیر و این این دوتا آتش ظاهرا مرادش از دو آتش که خونه ایرج یکی هم خونه ظاهرا. شد از آب این دو برو بروپش مرد یعنی این تا آتش خشم از آب تدبیر و صلح و اینا خاموش بشه چو چشم زمان به دوزم به گنج سه گر فهرم نخواهد درن اینجا چشم دوختن هم وعنی دوختن چشم ها یعنی اگر به وسیله پول چشم زمانه رو کور کنم باعث بشم که زمانه چشمش هم بذاره ما الان به یه بازپرسی به یه بازرسی که رشت میدین در حقیقت چشمش رو می یعنی میگین آه این پرونده هست ولی شما اینو رو <تصفيق> این پول بگیریم؟ شما این برق رو ندیکیم؟ به خیره شدن، بله اون که هست هم اون که اون چشم دوختنه به چیزی یعنی خیره شدن بگیم، اون هست ولی این دختر همون درست معنی دوختنه گفتم، در مورد بازم گفتم، چشمشون با. می دوختن، نگفتم؟ گفتم میگه وقتی که چشم زمانه رو با گنج به ضرب پول دوختن سه زدگر سپیر با آ آ آ شایسته است که سپیر هم برای من دیگه رنج نخواهد قصه ی عباس علمداری رو نگفته دوستی داشتیم ما عباس علمداری با اینکه که خونواده خیلی پدر مادر خیلی متعین متشخصه پیزی داشت شوهر خوهرش استاد دانشتر کشاورزی بود پدر اصلا مدی کل ازداد دارایی بود نمینا ولی بچه لاتی تمایل حبش متمایل به لاتی بود و باید دوستی داشتیم که تو لات های سرشناس خیرون بود خسروخان ماله امیریه بود اونم اداره تونلیسی کار می کرد مرد به اهل شعر عدد سواد خوب دیپلم علمی سال 1119 دوره پهلوی اول دیپلم علمی که خیلی مشکل بود چاید اول شد و در تهران با این حال اونم طبش به لاتی متمایل در حالی چه اون زامندار کارمند مجلس و با به مناسبت کارمندی مجلس هم دوست بود و ابوس آقا هم تر بود و بچه تر داری من دمی دست افتخار داشتن که اینجا امر بر خوسترخان باشه <تصفيق> یه روز خوسترخان من گفتش که ابوس آقا صاحب بکی شده و خدا پسری رشده ذریعی نداره که تو بهش یه زنگی بزنید، تبریک بود زنگ زنگ، ابو سامان بذار ترهنگ کار میکرد <تصفح> تو بذار ترهنگ کارمند بود، اصلا میاد دنبال لاد <تصفح> <تصفح> زنگ زده، ابو سلام، گفتم سلام آم احوالشون، گفتم حالشان خوبه گفتم قدم نورسیده مبارک گفت سلامت باشین، گفتم حالش چطوره گفت از شما رو میبوسه گفتم خب ولیعت خوبه ولیعت یعنی ولیعت چون پسره دیگه و یا قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد خانم یه مدتی مختصر خونریزیی داشته و رفتن و حکیم دوا کردن و جلوشون گرفته بودن تا بچه های الحمدلله به سلامتی بیتون می آوند عباس آقا گفت آقا ولیعت رفتنی بود با اسکناس میخشی گرفت <تصفيق> دوب بلیت رفتنی بود آقا با اسکناس بخشی گرفت اولا افراسی ها با من همینه زمانه قصد فتنه انگیزی داره ولی من اگه با اسکناس بخشی میگیرم امیدوارم که دیگه گرفتاری پیدا نکن چو کشم زمانه به دوزن به گنج سزد گرست فهرم نخواهد برنج نخوانم زمانه جزان کونه بش میگه منم به همون ترتیب رفتار میکنم سرنوشت رو همون جوری میخونم که او نوشته یعنی منم تا این حکمی که کردن اخترشناسا میگه من به این تسلیم میشم و گفتن اگر کشته بشه همچین همچین میشه من نمیذارم بگه نخوانم زمانه جزان کن نوشت میگه زمانه رو نمیخونم مگر همونجوری که نوشته یعنی بده به رعی سرنوشت از میکنه. چنان رست شاید که گردون بکش رستن یعنی روییدن رستن یعنی رها شدن رستن یعنی روییدن میگه آدم باید اونجوری زندگی کنه دنیا خدا آدمو رو کاشته اونجوری که گردون کاشته همونجور باید اومد بالا چنان راست باید که گردون بکشت بخون دوشی زید یه گردون یعنی مخففت گردون گردون یعنی چطفالت دنیا از همون گردیگن چون دوزش می نیزه گردان سپه برادشان برشید به موچه به موچه شاه هامدن پرستنز رو با خدا یکی انجام با بر به, بردست... به بردست من شد... که بردست من یعنی به دست من دیگه اندره ننجد بیمارستان کان کان شهریار جهان نزاید به هنگام نزاید به هنگام بردشت بردشت بود بر شود بچه باز رو چشم بود به برنات به نسان نخچیر شیر شود آب در چشمه خیش غیر شود در جهان چشمه آب پش ندارد به نافه درون نافندرون ندارد درون نافندرون بوی مشک, مشک. خوشت سوی شد نه جهان نباید دو از جهان دیوت های من هست از ایران توان مرای من هست نگفت کن که چندیز بیارن هفت سال بارش گران که گری دون که گری دون که گری داستان خرستم بسیار اینجا مسئله مهمی که در آین مملکتداری خیلی بهش توجه شده مطرح شده من حالا براتون میگم و این خیلی شواهد زیاد داره در عدد فارس معتقدم که اگه روزی پادشاه رو برگردونه یعنی پادشاهی که نیکخواه مردمه فکرشو عوض کنه بگه از فردا مثلا یه دوری به مردم بیاریم کاری بکنیم تمام چیزهای طبیعت وزش عوض یعنی دیگه محصولات خوب عمل نمیدون این خیال میکرده نمیدونم شکارها سر وقت فرچه نمیزن گله ها روزمنداش گوسمان دیگه میزاد درست شیر نمی. و به محض اینکه پادشاه نظرش رو برگردونه بعد دوباره فکر بکنه که به عدل و داد راه بره هم این ها یه قصه ای در شاهنامه است که بعد در کتاب های دیگر هم آمده این قصه خیلی از این لحاظ خیلی خیلی مهمه میگه که یه روزی بهرام گور در شکارگاه بود شکار داشت میکرد تشنه شد رسید به یه دهی بعد در تونده در زد دختری زنی آمد بعد گفت من سوارم ناشناسم بود. بود شاه خوشی گفت من سواری هستم نید داشتم میرفتم تشنم شده اگه ممکنه کمی هاپ بود دوی مرسوم هم بوده ایران مثل همه ی میانه مهمان نواز بودن اینا که برای مهمان وقتی مثلا آب میخواست شربت میابردن عزت بهش میذاشتی دختر میره و بر یه لیوان شربت نشیکر نشیکر رو بوده چیره نیشیکر با آب شربت روسته میره میگرد آب خوند بود چربت خوب بحرام میخوره و حالش جا میاد یه که ممکن یه لیبان دیگه هم دارم این سربت رو از چند نهی گرفتی بیگه از یه نه بیگه ممکن یه لیبان دیگه هم بدیم بیگه باید، با جمال نه بیره که یه لیبان دیگه بیره بحرام فکر باید چه برکتی داری اینجا؟ خیلی در این مردم خوبه و وضعشون و اینا و سروعه مردم و دیدید خوبه گفتش که بهتر یک مالیات اینجا زیاد منید. این خیلی بعض اینا خیلی خوب میتونن بیشتر مالیات بدم. این فکر رو کرد و دختر وقتی برگشت دیر این یه زیادی دیر آمد گل خانم چرای دیر آمدید گفت گمام می‌کنم پادشاه نظرش برگشته برای اینکه من سه تن این رو دادم تا یه لیبانی شرد از ما و طول کشید اون سه برابر بود و این همون نشکر بود من فکر می‌کنم که نظر شاخ برگشت و قلش رو و رعیت بد کرد حالا این درسته درست نیست و هر حال از جهت به اصطلاح تربیت پادشاه خیلی خوبی که این عقیده رو داشته باشه که تو اگه نیک مردم باشی همه چیز خوبه و همه چیز برکت دروینا این برای تربیت شاه خیلی خوبه فکر این نکنین که این خوراقاته اونم نمی ربطه و بردی ندارون نه باشه خیلی خوبه که پادشاه کسی که فرمون روام میشه یه چنین عقیده ای نسبت به مردم افراسی ها این مطلب رو هم می تو این تیکه تمامش هم این مطلبه میگه چون بگذاش نی میز گردان سفر یعنی وسط روز شد زهر شد نه وسط روز شد چون بگذاش نی میز گردان سفر درخشند خورشید به موخچه بزرگان به درگاهش آمده درگاه گاهش پسند مکان دیگه درگاه یعنی جای در اینجا میشه درگاه بزرگان به درگاهش آمدن پرستنده و با کلاه آمدن پرستنده این را همه را هفت صدیم کلاه همه هفت نمی‌خوام. یکی انجامن ساخت با بخردان پاسچا کمیسیون تشکیل داد انجامنی درست کرد با خوردمندانی که دعوت کرده بود حوشیوار و پارازمو بردان حوشیوار یعنی همون هوشیار. رد مخفف راد راد یعنی جوان مرد رد همونه دیگه یکی انجامن ساخت با بخردان حشیوار و خرابون بدیشان به, به دیشان چنین گفت اینجور شروع کرده هفته با به دیشان چنین گفت که از روزگار نبینم همین بر جز از پارزا میگه من از روزگار هیچ میوه ای از کارزار من, من تالا هیچ, هیچ بهره ای جز کارزار نداشتم از روزگار دارم تو جنگ دینم نبینم همین بر تو از روزگار بس ها نامداران که بر دست من طبع شد به جنگ اندران انجام میشماری داشت میگه چه بسیار نامدارانی که به دست من کشته شدند از بین رفت بس این شهرستان، شهرستان همون چهرستانه بعد بعدها مخففشم کردن شد شهرستان اینجا باید ساخت شهرهای قدیم رو بهتون بگم در شهرهای قدیم یه مرکز داشته یه بخش مرکزی داشته که دورش دیوار میکشتن ازمش بوده این دیوار بوده یا ازمه بخش مرکزی بخش رو مرکز. ازمش بوده روز. دستگاه های دولتی کاخ شاه حاکن اداره دادگستری اداره مالیات هم دستگاه دولتی این طوبه. یه بخش مفصلتر دیگه بوده اونم شهر بوده باز دور اینم یه دیوار بوده اینو بهشون شمافتن شارستان یا شارستان این اون بوده که مردم زندگی می کرد بیرونش هم دیگه حومه شهر بوده اطراف شرزیت آوادی هایی گلد و همین تهران خودمون این بخشی که الان وزارت دارایی و وزارت دادگستری و سیر و خرشیت و این, این قسمت که دمزم دم بازار اینجا ها تمام کاخای دولتی بوده این وزارت دادگستری خوابگاه ناصرینش بوده امارت شمسل اماره جزش بوده یعنی یه محبته که این طرف شیابون ناصر خوصه بوده اون طرف شیابون بابا همایون و یه قسمت از خیابون جلو یاباد اون طرف هم گلوندک و امتداد به اصلا خیابون بوگر جمهری این محبته چارگوش اینجا جای چیزای سلطه هسته میده که به شعباز میدهتن ارگم میگفتن پیش نفیق تبخونه بوده؟ نفیق تبخونه است یه ترخش تبخونه است دیگه یعنی از شروع شه بابا همایون تو تبخونه دل جنوب قردیش نزید خیابان سفر میره پایین بعد می توش راست میره تو خیابانی به همون خیابان جلیلوات خیام. این تیکه ها همه تا همون کنار چیز و از اون طرف تو خیابان ناصر خوصو این تیکه چیزای دو بخش دوله اونا ربط بهش میگن یا عرق دور رو میگن شارستان یا شارستان که جای مردم بوده و بازار بوده و تسبب بودن و دفونا بوده و میوه بوده و کامسرها بوده و شهر همش اونجا. میگه, میگه بسیار شارستان گشت بیمارستان میگه بسیار شارستان شهرها که تبدیل شد به مریض خونه یعنی همه رو زدن پشتم زخمی شد بسیار گلستان نیز شد خارستان در منبکتی مثل ایران من یه مقاله نوشتم امیدوارم یه وقتی فرصت بکنم اینو بکنن. مقاله نشنم تحت عنوان باغ این باقی که اینجا ها خیلی مثل آب خوردن میشه درستش کردی نگه دادی کردن همین کمپس دانشگاه نگاه کنید این خیلی زیاد موازویتی نمیخواد برای اینکه آبش تو موقع هست و،, و یه خورده مراقبت که بکنن این ها هست برای تو ایران که نمیشه این پرس قطره قطره آب بود بردارن که اگه یه،, یه کسی تعریف میکرد میگفتش که دوتا آلمانی با هم بحث میکردن یه مرد آلمانی رسول تهرون و برگشته بود بعد نمیدید رادیو، با آب و تا بیدن هم میگن که مثلا تپه های شمال تهران نزدیک تهران فارسی اینجا رو ده هزار برست کشتید اومده بود مزخره میکرد که اینا خجالت نمیشن این چیچی های حالا حرف شد اون یکی دیگه که باز اونم آلمانی بود و مدتی مونده بود اونجا گفتش که تو خیال میکنی که اونجا آلمانه یه همچه درخت در بیاد باست خودش و اصباب درد سرش زدنش زهدنش یه دونه درخت رو ده سال باید آبش بدن تا این بتونه پا گیره و بنابرای این ترتیب دادن باغ مواظبت، چه بسیار باغ ها که من تو جنگ کردم به هر سو نشان استفاه من از خب سفاه توی باقش کم کنه چیزی از باغ نمیمونه که همین بیاده بره تماشه تمام حاصل درماتو چندید شده همه از بینید بس آقا خان رازم من است و هر کون نشانست من است ز بیدادی شهریار جهان بیدادی یعنی بیدادگری نیست خیلی در عدب فارسی ظلم و می بیدادی درست همین صورت به معنی ظلم به معنی بیدادگری ز بیدادی شهریار جهان همه نیکوی ها شود در من. این همون نظریه که از گرد یه ظلم پادشا تمام نیکوی ها از به میره پنهان می شود به هنگام بردشت گور سر موقع در من چون گور اینجا ما این نکته رو براتون بگم که دیگه فکر می‌کنم که هیچ تریدی نشنا ببین بنابراین اینجا براتون میگم گور ما این مهم می‌کرسه یعنی معنی قبرت یعنی گور معنی قبر ولی خود همون قبرم یه جایی یه جایگاهی که مولا میذاره به همین دلیل گور به طور کلی رو یعنی مخزنه جایگاه مخزن در بسیاری از دهات یه جایی درست که آب اونجا نگهدیرن مثل استخمانند ولی چیز نداره ها سیمان بکنه نه نیست یه معابتای بزرگی آبو رحا میکنن، خوبه یک آب و آبو رحا میکنن، آبو میبنید، توی شمال ایران خیلی زیاد در تا هم داهات بازندران گیلان اینا هست اینجا آب میگه دارن، وقتی آبو لازم دارن، از یک گوشه اینو باز میپنه، این آب درازیر میشه، میاد کهی آب اینا رو بهشون میگن گراب این مثلا آب و بسیاری از دهات گیلان آخرش کلمه گوراب میاد مثل باز کیا گوراب یعنی استخ که از باز کیا خود چون جنب بازی گوراب دلیل زو جنب علی پاس کیا گوراب صد تا صد جای دیگه هست که ما همین تحلیل اسم آخرش کردن گوراب میاد می یعنی جای جایگاه یکی یکم هم همین حیوانه که دقیقاً خره خره بخشی و نمیدونم شما در ایران بورای ایران زیه بودید یا نه زیه بودید اگر باقی وش دفته بودید این خره رنگ خاک رنگ خاکی داره صبح رنگ شن کبیر برای که تو کبیر نبینم ایران به رنگ شن اونجا برامده خاکی صبح رنگ فقط یک خط از بالای سرش تمام پشتش تا دومش یک خط سیاه رنگ که روی گردن فیال داره مثل اصل یه مثالی مو بلندتره پشتش روی سبتون نه تا دومش هم سیاه همین باقیش همه رنگ کاتی بعد این حیوان به خطی زیبا یک مثال چربی این نداره این گاه هایی پرواری که هایی کلش کنده دسته مثل این دروح پوست این مجسم هایی که با مفرق با برنج میسازن چیزا میگنید این زیر این پوست نعضلاف گرد قشنگ آدم حض می این هیمون میگاه کنه و به قدری سریع توی دشت گیرن گایی از جده سرعت به چش نمیاده به نمیتونه آدم ببینیش رد میشه به طورت آدم نمیده اینو که شکارش هم و گفتن آقاین امریکای در زمان جنگ که خیلی زحمت کشتن اونجا با جیپ و ما مسلسل می رفتن اینا رو می زدن و می ریخنم هم کدیل می رفن. بعد، برحال، ارز کنم که این گوره خرایه یه نوعش هم نیست که پیجانه تفنشی که مال مال افریقا اون اونم یه نوعش و اونم باز برای در اومدن به شکل محیطه برای اینکه تشکیصش ندن، تا تو جنگل زنیدی می‌کنه، اون که احساس نکنن که هیگون بر اون گور، یک معنی دیگر گور به معنی بزرگ و کبیره كبی، به طور حتم بهرام گور که میگن همیشه گفتن که تون خیلی شکار گور میرفتش گفتن بهرام گور این درست نیست بحرام گور یعنی بهرام کردین چون دلیلش اینه که در فردوسی در شاهنامه یه بیت های آمده که مثلا بودی که چون میرش زیاد بوده شکار گور او رو خاندن بحرام گور اگه این گور دوتاش یک کلمه باشه یعنی این بیت خوافیه نداری این بیت خلقه پس اون گوره که اون طرف میاد ببنی اون حیبونه این طرف بحرام گور دیگه اون گور نیست اگه اون گور باشه اصلا فیض غلط میشه اینه که اون رو خانون گور یعنی بحرام بزرگ بحرام کردیم خب نزاید به هنگام بردشت گور شود بچه با... باز را چشت کور بچه باز دیگه کور به دنیا میده از اینه که آفت تیمه روبرت پستان نخجیش شیر حیوانات شکاریه دشت چیز... چواد آب در چشمه قیر یعنی چندشما خوش میشه ساعت در جهان چشمه آب پشت البته میدون که قیر و نفتم گاهی از منفذ کوها میزنه بیرون یه مثالی یعنی هزاران سال هزار سال بیشتره که بشر نفت رو شناخته و به صورت سوخت ازش استفاده میکرده تا نفت تسبیه نشده ای که می اومده یه جمع می شده اونجا می رفتن می گرفتن یا قیر از لای شفاف سنگ ها می اومده بیرون تو می ولی نه این مردار و ندهیم این که حالا هست این است که قیر خیلی شنافته هست خیلی،, خیلی سال شدید شهانمه خودش هزار سالی شود در جهان چشمه آفشت ندارد به نافندرون بوی مش میگه مشت در درون که بوش نیده بو نداره یعنی برکش کمش سه کجی گریزان شود راستی یعنی راستی از ناراستی گوریزانی یعنی راستی پنها نیش ناراستی جوشنی شود پدی دارد از هر سوی تاستی. از هر طرف کمی و کارسی خب نتیجه این حرفا چیه؟ نتیجه این است که مراسیر شد دل به جنگ رو خدیل مراسیر شد دل این را چه دور رایی؟ اضافه که نمیشه یادتونه از را ها را گفته بودن؟ یا نگفته بودن؟ یا گفته بودن چهار جور را راه در پارسید اولین و مهمترینه که نوست درسال جاها میاد دنبال مفتول سریعه حسن را دید کتاب را بردار علامت مفعول سریع، مفعول مستقیم را در زبان پهلوی بوده راد راد به معنی سبب و علت. وقتی که آرشی داری دیر بیاد من ازش بپرسم چرا دیر آمدید یعنی چی چه حصه استفامه که قیده استفامه را میشه چرا برسته؟ چرا یعنی به چه سبب برسته؟ بسید بگیم چرا دیر آمدی یعنی به چه دلیل دیر آمد جواب میده به رای این که اتوبوس گیرم نگیرم باز به رایه یعنی به سببه این علکه تو پس برای همون راست همون رای حرف اضافه شده بر... به همه سرش شده برای. یعنی به سبب به علکه یا چرا به استثامه برای را برانی سوابه اللیه بنابراین بسیار جاها را به معنی برایه میاد اصلا چون هر دوشون یکیه دیگه میگه یوز روزی یوسف با برادران به صحرا بیرون شدن تفرج را یعنی برای گردش برای برنی. را برنی برنی. رای که به همین معنی به همین معنی برای اما زیادی به صورت تک کلام میاد پشت میگن رای زاید داره که داره یه بگی میگه که من نیم. اگر چه ناشکیبن قبلا میگه که دوستان به من گفتن که این معشوق تو که انقدر راحتت میکنه و انقدر ناراحتت میکنه و انقدر به تو مهلی نداره نه رو سراغه میگه من نیز اگرچه ناشکیبن روزی دو برای مطلحت را بنشینم و صد پیش دنبال یک کاری برای مصد یعنی برای مصد رای زایی رای زاید. ممکنه اینجا بگیم که خب آقا این توی شعر مجبور شده این راه را آورده باشه جواب اینست که اولا این شعر صحبیه. من کی نیستم من ممکنه اینجا بخوام شعر بگم مجبور بشم یه چیزی بیارم ولی که مجبور که <تصفيق> اون چلمات تو درچه مثل مون میمونه یعنی چلمات مثل بنده های دست بسی نواید بادن که فیکر صدای کنید تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو بیا تو در نسر هم همین هم یوسف که من مثال دادم یه گذبه بسیار قشنگ زیبایی هست توی سلسده شاختاره عربیت فارسی. کارسی یه مفصل روی پنجاه شصت تییه استادای دانشگاه عالی درست کردن خیلی قشنگی از بیاد های مفصل از شاهنامه، از قابوس از ماست مولانا از پولستان، از بوستان، از کیمیایی صورت از پیل تا در آوردن، توضیح دادن یا برای درس کردن برای درس شده یکیش از تفسیر قرانه و قصه اولاً در کمال سادگی خیلی خیلی نوشته ساده است به طوری که دفعه اول شاید 35 تا 40 سال پیش من یه نسخه ازین خریده بودم تازه در اومده بود مرحوم دو طور خاندری هم درستش کرده من خریده بودم دو طور هم بود قیمتی بودم خریده بودم رفتم خونه یکی از دوستان زن این در حده چار کلاس سوا پیش کلاس اینو جا گذاشتم باید باید هم یادم اومد اینو جا گذاشتم یکی دو روزه بعدش که مثلا تلفن این نبود. بعضی نبوند بعد که گفت آقا چقدر قشنگ بودیم، من چقدر عرض کردم چقدر لذت بردم خدا در تو بیا خواهش بیدان این گفتم خانم من خدا خاصه. من این یه مثلا تو خوندی خوشت اومده چی بهتره خونده بود این خانم قشنگ جا هست. خانش اونجا توی او میگه روزی یوسف و برادران از شهر بیرون شدن برای تفرج را دیگه اونجا. این خ... این تف... چیز یوسف رو بگیرین حتما هست قیمت چند خیلی ارزون شاید دونه یه دولار مثلا قیمتش احیان همین توکام داره اینجا تصویر قصه یوسف به, به انتخاب دکتر خاندری خیلی خیلی لذت برش و قشن و نمونه های زیاد این رای زائدم. این شد چند شد سه تا آه؟ رای برای رای الهانت و رای نه فک اضافه که انوز نگفتیم رای زاید فک را چی؟ همینجا مرا سیر شد دل جنگ و بری رفته دیگه این یعنی چی؟ یعنی دل من از جنگ و بری درسته؟ دل من چیه؟ مضاف و مضافهانه لگه، اضافه، دل من. درسته؟ در اضافه، قاعده این است معمولاً اول مضافه بیاد، بعد مضافهانه لگه بیاد. این اضافه رو به انگیزی بهش میگنم آگه گه هر این گیتونم خرابه اینجا اولا اونو درست کن. خب. دید میشه مضاف، من میشه مضاف نہیں۔ قاعده این است که در اضافه که اول مضاف بیاد بعد مضاف الی بیاد در فارسی میفهمه. مثل کتاب حسن. با سه جزء اندرستید؟ یکی موضاق یکی موضاق ملک یکی هم اضافه که این کتره هم روز در جاش می و در جاش دو میدارن روزه؟ این قاعدش اگر به عکس یعنی مضاف جلو مضافنه یه جلو اضافه رو بشین یعنی اضافه مغلوب اضافه مغلوب یعنی اضافه پشت رو شده جای مضافن درانه عوض شده مثل گلاف گلاف یعنی آب گل درسته؟ شده گلاف سیلاف یعنی آب سی آهو برای. یعنی برای آقای این میشه اضافه مغلوم ولی در هر دو حال این اضافه تبیلش یعنی اضافه مستقیم دیگه تبیلش یعنی مستقیم دروست چه اضافه مستقیم باشه چه مغلوب باشه باید دو جوزه اضافه تلوح هم هاشه شده ها نمیشه پس در هر حال اجزا اضافه به هم چسته اگر که خواهیم دونجوز اضافه از هم جدا کنیم این کارو بهش میگن فک اضافه فک، اینام که میگن فک باید که تنها استخون است که جدا هست دیگه هم حرکت بهش میگن فک فک اضافه این جدا کردن اضافه اینجا نگاه کنید موضافانه لک، موضافانه جلو مضاف در مقدم چند کلمه پشتش آمده مضاف اومده پشتش مضاف و مضاف جدا کردن اولا در اضافه مضاف نه میاد جلو پشتش هم راه داره درست اینو بهش میگن قاعده اضافه اون را جن رایه فکی اضافه ها وقت دیگه گرفته شده دوشن شد ناملن هم, هم نوشتیم مرافی شده جنگ و بدی. هنی جزد خواهم رای ایزده خواهم یعنی خواهم جزد میگه از این به بعد میرم دنبال راه ایزده ایزد. راه راهی که خدا قبول داره کنون دانش و داد باز آغاری. میگه حالا دانش و داد رو داد یعنی قانون یعنی عد برمیگردونیم به جای همه رنج ناز آوریم به که مردم به زحمت بیندیم و عذیت کنیم رنگشون بدیم حالا آسایش بهشون میدیم برای ساید از ما زمان جهان بزر یه مده که این دنیا از راحت کشید نباید که مرگ آید از ناگهان نباید به معنی موادات در فضوسی در شانان خیلی جا نباید نیت به معنی موادات مبادا که ناگهان مر بیا. واسه میگه که من کم که ندارم که دو بهر جهان زیر پای منم. یعنی دو سه گومه دنیا الان هر احتیاج دو بهر از جهان یا اگه پنج قسمت کنن من میذارم چقدر چند ولی یعنی قسمت قابلی از دنیا زیر پای منم. از ایران و سوران میگه دو بهر از ایران و توران سرای من است ملک من نگه کن که چندین گنداوران بیارند هر سال باج گران میگه ببین که هر سال پهلوانان و سران چند کشور مالیات بزرگ مالیات زیاد میارن برای من باج باج و ساب مالی باید بله همونی کن که چندینز گنداوران بیارند هر سال باجی گران گریدون که باشید همداستان فرستن رستم که داستان در آشتی با سیاه نیست به جوگم فرستن بی اندازه چید چون موافق باشید همداستان باشید یعنی موافق باشید اگر سوما موافق باشید یه نامه‌ای برستم یعنی این داستان برستم یعنی اوزار و برستم بگیم نامه‌ای برستم براش و همین احوالات رو برستم بگم با هم در آشتی بزنم و به او بی چیز برستم یکی یعنی موافق باشین ما راه سل بریم روی خوش به هم نشون بریم طبیلیست که جواب انجوانم موافقه چندین دلیل اینکه این مطلعه چه هایی و بهتر اینکه این, این کار بکنه یکی دیگه اینکه الان شاه خودش نظرش بینه و بنابراین همه تعیید بخوند میشن به دیگه سرمی و ما چون نه. آه. پس دیگه و دویشون شوری. شوری سیاوش، یعنی ببر. به نظر، به سیاوش، سیاوش بار آفته. شهرش گنجی دیاره. از اون تاج یکی تاجی پرگون شاه با. هم با ما. بسیار شما بس. همی بزید روشنه، حقیقت نداره میگه که فران یک بیگه فاسخ هار هستند همه خوبی و عاشقی خواستند که تو شهریاری ما چون رهی رهی یعنی بنده و فرمان برده هاست رهی یعنی بنده خدمتگاه، فرمان برده تو شهریاری و ما چون رهی بران در نهاده که فرمان بزید. هر هرکه امر شما باشه ما منتظریم که اطاعتید همه بازگشتن، سر پرزداد، نه آمد که سیراغ، خم و رنج، یاد همه با حال خوش، با فکر اینکه بعد بعد پیتر میشه، خم و رنجشون فهموش کردن برد. بعد شاه، به ارزیوز گفت که، یکی ارزیوز آن گهشن این گفت شاه که بپسیک، خیل اند از مستر بسیجیدن بسیجیدن یعنی آماده شدن میدوند که وقتی که احضار می کنند فروازه رو میگن بسیج کردن که بپسیج کارو به فیمایی را رو آماده کن وسائلو آماده کن و رابیو به زودی به سازو سخون رامهی میگه زود کارو آماده کن و دیگه حرف با من خیلی نزن چندتون یعنی نگو که اینو کجاشو ببرم چیچی رو ببرم این که مثلا چندتا از نه معطل نکن به زودی به ساز و سخون رامه ایست لشکر کن سواری دیویست دیویست و سوا برای تشکیفات و برای اعترام دیگه. به نزد سیاوه اش پرخواسته به هر چیز گنجی بیارافته از اخفان تازی به ذره امتتان تازی یعنی عربی از به تازی یعنی عربی اصف عربی با واسطاخت و افسار و لگام ذرین اینا رو بسطایل اصفاری مال اعیان اشراف روش چیزای طلا کار می جردن روش طلاب کار می نقش می کردن می الان هم هست می ده. از اصفان تازی به ذرین ستام ز شمشیر هندی به سیمین مینیان راجب هند و آهن هند و اینکه از قدیم پودات های خیلی خوب در هند می مفصل این که هستن قبل شمشیر هندی شمشیر خیلی خوب بود میگه های هندی که غلاف در تیمین غلاف نقره داشته باشن ببرم. بیت قبلی چرا؟ نمی‌خونه زهر چیز گنجی آراسته چرا می‌گه بی آراسته؟ نمی‌شون باز می‌شونه امبیز بیش اضافه از وزن نه. نذری که معنیشو عوض نمی‌شید. به تاکید به اول فعل هست. مثل بروFIA که بی‌آراسته، نی‌آراسته. یعنی به تاکید ان بیس که همیشه طرف فعل در میاد. البته اینجا میشه بگه گنجی آراستن میشه بگه اما و و آراسته. از خونه تازی بزرگمستون به تتام شمشیر هندی بسینیا، یکی تاج پرگوهر شاهوار یا میتونید بخونید یکی تاج فرگوهر شاهوار یعنی تاج خیلی قیمتی شاهوار وار پساوند لیاقته سپیکس لیاقته شاهوار یعنی چیزی که لایف شاهد یکیتاست فرگوهر شاهوار سه گستردنی گستردنی چیه؟ فرشت گستردنی غالی، غالی چه؟ گیلین؟ غالی؟ به گستردنی صد چطور بار بار پنجه بار صد شطور قرام کنیزک ببر هم دیدید کنیز رو مثل که قبلا براتون گفتم نگفتم؟ کنیز گفتم به عنی دوشیده امروزه به عنی و این لغت، لغت خیلی زیبایی شد. معنیش عوض شده، فراوان. کلاه اون تنیزاکی که برهم دیدی، بگویش که با تو ما رو جنگید. بگو این هدیه رو ببر، تا بگم ما با شما جنگی نداریم بپرسش فراوان. پرسیدن به معنی احوالپرسی کردن در شاهنامه زیاد آمده. او را به فورد فارغونه با از او به فورد یعنی که از او به فورد محمد جان چی رو به یعنی جاز او به که این کار کرد یا نکرد ولی وقتی میگه او را به فورد یعنی اخرش رفت به او را به فرست فراباد با او بگوی که ما سوریه ایران نکردیم رو میگه اول پشتی کن، محبت کن بعدم باید که ما دیگه طرف ایران نمیرگیم به صغدیم و زمین طالب رود جیهون مراست به صغدیم و این پادشایی جدا پادشایی به معنی منلکتی صغدن مرکزش به شهریست و یک نوع زبانی اینا هست که از تلطه زبانهای است. طبیع فهلوی ولی زبانیست اون زبان سعودی که گرامرش اینها را نوشتن هستش خط مخصوص تشته زبان مخصوص تشته و محل سعود و تاجکستان فهلی از اون همسه همه سعودی اونجا صحبت این فرمه چیزه تعبول بده کده البته ولی بله چیزش ریشش هم اون دیگران را نهیم یعنی تاجیکا که به قول خودشون تاجیکی هرد نتنن یعنی فارسی هرد نه اون زبون نمیتنن مثل لوری که توی اینو حرف میزنن گیلکی لوری بلی زبون ها هست سمنونی که اصلا یک کلمه شما نمیتنن سمنونی ده ساعت حرف بزنن شما یک کلمهش نمیتنن دوست اسم های عشق